عاز زنها در مسافرت با حجاب کامل می توان نماز بخواند بله وقتی با خانوم میره مسافرت جای توقف کل با نقاب نمازش را بخواند